در انجیل آمده است که ای فرزند آدم، اگر توانگرید همت، مشتقل شوی به مال از من، و اگر درویش کنمت، تنگ دل نشینی، پس حلاوت ذکر من کجا دریابی و به عبادت من کی شتابی؟ گهن در نعمتی مغرور و قافل، گهن در تنگ دستی خسته و ریش، که در سراب و ذرا حالتی است ندانم کی به حق پردازی از خیش،